صلی علی محمد و آل محمد معجزه فرجهم بسم الله الرحمن الرحیم مو در طب المعصومین بود بحث پوست و مو و خضاب و استفاده از رنگ‌های طبیعی یا شیمیایی گفتیم رنگ‌های شیمیایی همچون داروای شیمیایی نسمومیت هایی و آسیب هایی به پوست و مو و مغز و نور چشم می زند. حتی زمینه برای گلوکوم یا آبسیه چشم و یا کدری عدسی چشم کاتاراکت یا آب مرواری می شود. رنگ های شیمیایی خشکی مو و خشکی پوست را بیشتر می کند و ذریب شکست مورا افزایش می‌دهد. اما داروهای گیاهی و یا بعضی از استفاده که از حیوانات می شود در قدیم و یا جدید می یک کم براتون بخونم ولی بعضیش رو قبول ندارم می بگم چی چی میگم از قدیم و جدید تو تبع سنتی و اماننده او منظورم این. بعد خوشمزش بعد میگم که حاشیه زلم مثلا تو بحث زهره یا مراره یعنی بحث مایع سفراوی استفاده از مایع صفراوی انسان و یا غیر انسان از پرندگان و یا چارپایان علبخاران یا درندگان و یا آبزیان دریایی حتی استفاده از سفره مایه سفروی لک پشت اگر ما زهره این کتاب جانور درمانی, جانور درمانی خواست درمانی و پزشکی حیوانات گوناگون کازم مقدم حالا یکی از دانشمندان قدیم رو که اسمش برده این بالا اسمونه نیمه مخوام یه چیزایی رد کنم اگر ما زهره چارپایان و حیوانات آبزی و خشکی و پرندگان را با هم مقایسه کنیم به ترتیب اهمیت حال اینش یاد یک در اولش پرندس زهره و مایه صفره پرندگان در ردیف اول. دوم ماهی شبوط خرچنگ دراز دریایی که کجدون دریا میگن و لاک از ایسه ماهی صفرابی در درجه دوم چار پایان در درجه سرپوم قرار دارند. در پرندگان که در درجه اول بودن باز مایه سفراوی پرندگان شکاری باز درجه اول اول از حیث مایه سفراوی در میان پرندگان زهره مرغان بزرگ شکاری مثل عقاب مثل شاهین مثل باز مثل جوق از زهره سایر پرندگان شناور مثل پلیکان مثل مرغ دریایی همانند این ها و بیابانی مثل حبارا که در بیابانهای ایران در کدیر هست و در بیابانهای عربستان هم هست یعنی خوبره ره میگن خوب ره میگن مایه سفراویه میگیم آن. به شرط اینکه که آنفولانزای پرندگان یا مبتلا به ویروس پرندگان نشده باشند. و خانگی مثل همین مرگ و خروس و جوجا و یا حرفا مایه سفرایی زیر کبد تو کیسه سفرا تر و گزنده از مایه سفرایی پرندگانه چکاری تو درجه سوم لفظ چارپایان گفتیم خب تو چارپایان آنچه که زهرش قوی تره مایه سفراویش قوی تره به ترتیب قوت مایه سفراوی اول چیه گابه بعد آهوه بعد خرسه بعد بوزه بعد گوسفند. برای کسایی که حرام خورند از غربشه کافر تفلک حرم خوری داره یا آجا من گوشت خوک هم میخورم پی خوک هم میخورم سوسیس کالباس و همبرگر خارجی هم که پی خوب داره اونم میخورم میگم خب تو که حروم خوری مایه صفراوی خوک از همه مایه های صفراوی چه؟ از عیس اثر بخشی مصبت و از همه ناتمانتر زهره که اینا برای حروم خورا حالا اگر میخوایی گذینش کنی توی مایه سفروی بهترین زهره یعنی مراره زهره که رنگش زرد و طبیعی باشه اگر زهره رنگش زنگاری یا لاجبردی یا سرخ سرخ باشه چنین مایه صفوی خوب نیست هالا مباحثه ما تو بحث آرایش اگر کسی مثلا دومل دارد اگر کسی مثلا دومل دارد حالا اینجا دومل یا زگیلش یا مثلا کورک دانه های درشت قارچیش رو که در با چی سر باز کنه کم کم ماتشه مثلا یک با شیرابه انجیر برگ یا انجیر که می کردید سفیدی می ده شیرابه انجیر یک بار دیگه از این بهتر چیه؟ سرکه طبیعی سیب سرکه طبیعی سیب زد زگیره زد میخچست زد خار پاشنه پاس زد دومن که مباعثه خودمونه حالا تو بحث مراره تو بحث زهره بیایم از زهره قوی استفاده کنیم. ضد چی همون ضد دومن دن های گوشت روی پوست می روییم. آموماً زهره گرم و خشکه و زودایندس. زهره حیوانات بر حسب نر و مادن و تشنگی و سیرابی و گرسنگگی و سیرین و حرکت و آرامش حیوان اختلاف دارند. تو بحث آرایش زهره گورخر گوشت های زیاده را بر می کند و بر پوست که به مالند اثر دومل را از بین می بره. حالا کسی می جونور جنور درمانی کنه این هم یه اما وصل که درمانی بود که گفتیم بهتر بود که سرکه سیب موامنم سرکه سیب نه تنها زیگیل و خار پاشنه از بین میبره بلکه اثر زخمم رو پوست نیمونه ترمیم کننده قوی پوسته نزیر ادویه زردچوبه که اگر خالص باشه در های قانقاریا یا پوسیدیگی بافت زخم رو خوب میکنه و اثر زخمم روپوس نیمونه اگر کسی باد سرخ داشته باشه میتونه این زهره رو قاطیه کنه با اون معجونه که درست کرده و زمات کنه اون خوب میشه اگر کسی زخم رو قرحه داشته باشه میتونه زهره رو با نترون یا سمق سنوبر یا گل اندولوسی مخلوط کنه این دومله های بزرگ چرکی یا کورک رو از بین میبره یه چیز دیگه هم هست میگه ها من نمیخوام زهر استفاده کنم ما کجا آفریقا کجا یا ما کجا باقا کجا مخوام همینی که در دست رسمه استفاده کنم دوم چیه میگیم که قدره براده آهم به اضافه زرنیخ به اضافه عسل به نسبت مساویه ایستار قاتی کن روی جوش های بزرگ چرکی بدن که میگیم کورک خیلی دردناک شما یه بار بذار سرواه میکنه داخلش تخلیه میشه درد ساکت میشه برای اینکه دو دوچار افونت پوستی یا به جاموندن رد زخم رو پوست و یا افونت باکتریایی زخم نشی حالا چوبه زرد چوبه رو بخر قشن بشور سریع با دستگاه هیتر برقی خوشکش کن یا جلو پنکه خودت طحانه یا پودرش کن بعد بریز روی همین زخم چرکی اینه جارو برقی آشغال آشقال برمیداره افونت ها رو از زخم میکشه بیرون نمیگذاره افونت باکتریه هایی کنی ست قویه و پوستت هم ترمیم میکنه وقت زخم هم نیمونه ولی به مدت یک هفته اون محل زخم رو آب و خاک نباید بزنی خب معنوم شد مومنا اینم خارج از کتاب اگر کسی مثلا مفاصلش درد میکنه به نوع درد التهابی. مثلا آرترید روماتوئید داره التهاب مفصل داره یا رگ واریس درد میکنه مثلا مرد و پسر واریس پشتپا دختر و زن واریس دریچه های لانکبوتری دور مفصل مچپا به اصطلاع تخصصی پاتولوجیست بگیم دریچه های لانکبوتری حالا در درمان التاب مفصل یا در درمان واریس میتونیم از زهره استفاده کنیم اگر زهره کیسه صفرای بزه نر بزه نر را رو روی محل بگذارم علاج پاغر و واریس میشه رد به سلان واریس میشه تمام شده اگر کسی کوزاز ناشی از سرما دارد اونجا زهره گرخه یا تو بیابونه زهره گرگ سگ گلت چوبون داره می دنبال گرگه گرگه لطفارم کن میتونی از زهره گرگ استفاده کنی در درمان کسی که کوزاز ناشی از سرما دارد و ترنجیدن پوست پوستش قچقات شده از شدت سرما سرد خشک مثلا های بیس درجه ظرف سه دقیقه تو محیط باز باشی یا بدن یخ میزن مثل قندیل میشه حالا این ترک خوردگی پوستو در سرمایه سرد خشک مثل توضیح دادم حالا جدیدترین مطالعات تحقیقاتی در مراکز تحقیقاتی ایران که اینجا حاشیه زدن تو بحث زهره و اون اینه در بحث هپاتیت هپا یعنی کبد ایت یعنی بیماری التحابی تو بحث هپاتولوژی کبد شناسی هپاتیت بیماری التحابی کبد یه بار یرقان عادیه یا زردی عادیه چه زردی نوزادان اکتر چه زردی غیر نوزادان یرقان عادی داروش چیه؟ اینجا ترانس چربی بالا رو ترک میکنیم هر روز یه لیوان سیب بخور اگر چربیای موظر خونت هم علاوه بر انزیمای کبدیت بالا بود سی اچت، ال دی الت و تیریگلیسید خونت بالا بود به همراه نهار یه کدو مسمه هم بخور یعنی یه کدو خورشتی پوستش سربزن با پوستش بود. به صورت خام یا بخار پرست تموشن یرقان عادیت خوب میشه پس حذف ترانس چربیه بالا تمام چربیه های حیوانی و گیاهی تحک میکنی چه جامد چه مایه فقط روغن زیتون یک قاشق بانه ها یک قاشق با شام نخوری اون یک قاشق روغن زیتونه که میگیم خاطر دو خوبیش هم چربیه های مزهرتون میاره پاین LDL و تریگلیسیلیتون هم چربی های مفید تو بالا میبره مثل اومگا 3 اومگا 6 دیگه نیاز نداری که قرص ماهی بخوری کشیمیایی هم میفروشم لازم میده بله روزی یه قاشو پلو خوری با نهار یه قاشق پلو خوری باشم. این مال یرقان عادی اگر اکتر یا زردی نوزادان بود سرگردنش یکی خفیفه و به بدن گرفته متوسطه کل بدن بچه گرفته شدیده حالا این بچه اگه سر و گردنش گرفته یک قاشق چای خوری آب پوست کدوم و این دارو بچه دامش مادر این بچه که به بچه شیر میده به مدت یک هفته حصف مطلق چربیا فقط روغن زیتون میخوره و هر شب یک لیوان آب سیب تازه می‌خوره خودش آب بگیره سیب رسیده شیرین سیب رسیده شیرین تازه اگر مؤمنه یک ته نوزادی که از روز سوم به بعد کم کم خودش نشون میده اگر زردی نوزادی متوسط بود سر و گردن و تا نیم بچه گرفته بود اینا دو برابر میشه یعنی به بچه دو قاشق چای خوری آب پوست کدو مصمم میدیم یک قاشق امروز مثلا ساعت 9:00 یک قاشق هم فردا ساعت نه مادر بچه به مدت دو هفته حس ترانس چربی بالا و روزی دو لیوان آب سیب میخوره یکی وسط روز یکی شب قبل خواب اگر زدی نوزادی شدید بود و کل بدن بچه رو گرفته سر کله زرد شده چشما تخمش زرد شده پشت لاله گوش زرد شده گردن زرد شده روسین پشت و بازو همه اینا زرد تا پایین پاش گرفته خیلی خطریه سری باید متخصص نازادان ببریم باید دستگاه تشدید کننده اش ماور بنفش بن شدهید اورژانسیه. اگر زردی شدید بچه رو دهمان نکنیم ها هاش آسیب می و دیگه خوب نمیشه. و سریع اقدام کن. حالا تو بحث اورژانسی اگر اینجوری شد معلوم میشه اون دوتای اول رعایت نکرد حالا اورژانسی گیاهی چیه؟ به مدت سه هفته بچه فقط سه بار در سه روز پشت هم روزی یک قاشق چای خوری آب پوست کدو و سما. فقط سه بار یعنی سه قاشق چای خوری هر بار تازه بگیریم مونده نباشه که باختریای یا قارچی بشه این کدو و هم ارگانیک باشه یعنی دارای سموم و آفات گیاهی و سموم شیمیایی نباشه ارگانیک باشه طبیعی باشه حالا آب پوست کدو و سمات سه روز پشتر هم سر ساعت یعنی هر بیس چه ساعت یه قشن چای خوری. این دارو بچه تمام مادر این بچه که به بچه شیر میده به مدت سه هفته مطلقه ترانس چربی بالا رو ترک میکنه و روزی سه لیوان آبسی تازه طبیعی شیرین رسیده میخوره روزی سه لیوان یعنی هر هشت ساعت یک لیوان زردی نوزاد خوب میشه تو بحث انسان صفحه 76شش تو جونور تو قسمت آرایشش میگه آب پشت آدمی به هک را میزد به هک ایرانیان میگن به عربی میشه به هق به هد و چشم قاف این طب سنتی خیلی خوب یاد دارم خون بعضی نارستایی ها بگم از این مثلا جدیدی ها که آرایش مارایش میدن چه آمریکایی، چه انگلیسی چه آلمانی، چه فرانسوی ماننده از زایات کشتارگاه ها و زایات بیمارستانی زایشگاه ها و درمونگاه میارند لوازم آرایشی درست میکنن به اسم مارک خارجی هم پول به صرف. از جهل و قفلت مردم سوء سو استفاده میکنم بفهم حالا تو رو آیاتشیه حجبا میخوام روتوبت پوستم حفظ بشه خونم تصویر بشه پوست شفاف براغ درخشان داشته باشم پوستم جوش نداشته باشه مک نداشته باشه لک های قهوهی و سیاه نداشته باشه طول عمر سلولای پوستم بالا برم رشد موی سرم اینا مفید باشه همجه ادامه ده هنوز نهزت ادامه داره هنوز تمام اینا که گفتم و اضافه حالا دونه دونه یاد بفهم یک تو سبد جیره قضایی خانوار کاهو باشد. تصفیه خون میکنه حرایت داخلی کم میکنه نمیگذاره جوش پیدا بشه توی پوست حتی جوش های قرور جوانی و یا جوش زونا و در درمان و کمک به درمان هم نقش ویژه داره حالا این کاهو که تو رو حالا این کاهو رو بدون سوس بخور سوس کپیرایت کورکورانه از غرب و شرقه که ادامه داره یعنی میگیم فرهنگسازی مجازی دشمن برای آسیب رسانی جدی به مجموعه با آبلیمون ترشه مونده هم نخور قبلا توضیح داد نصیجه بافت ازولت حالت الاستیکش شاید دست میده از دست و پا و از سنوبری قلب خودش ویل میکنه پمپاژ خون ضعیف میشه گردش خون ضعیف میشه توان حرکتی کم میشه چه سنت مزخرفیم در داخل کشور و خارد کشور که آبلیم و ترشی مونده میخورن و به کپی رایت کرکرانه از غرب و شرق آبلیم و سنتی میخورن پس سالاد کاهوت مؤمنه یا خود کاهو رو با آبلیمو ترش مونده یا سنعتی نخور. اگرم دوست داری آبلیمو ترش بخوری تو 24 ساعت یک قاشق مرب بخوری، آبلیمو ترش تازه تازه. این سنت غلطه که از ایران باستان و جای دیگه کمی آبلیمو ترش مونده میخورن. اول سال آب میگیره، تا آخر سال میخوره. فرق میکنه با مخمره مثل مخمر آبقوره طبیعی مثل مخمر سرکه طبیعی مثل مخمر نان مثل مخمر ماست که به نفع بدنه و او فرق پس اولی چی شده همجون؟ کاهو بدون سوس و آب نیمو ترشه مونده دوم به همراه نهارت پرتقال شیرین یک عدد به همراه شامت یک عدد شیرین، بحث لیمون اگر نبود بحث ترنج اتراج یعنی میوه بالنگ ما در اول تبب المحصومی چند روز توضیح داریم که برای اینکه که هزمشم آسان شود نون برشته تنوری بعد از خوردن میوه بالنگ مصرف اونا توضیح شدارم دیگه نمیخوام تکرار. پس لطافت پوست میخوای نرمی پوست میخوای هنوز نهزت ادامه داره تو بحث میوه های جالیزی میوه طالبی لطیف کننده و نرم کننده قوی پوسته هم یک قاش طالبیت کل 24 ساعت بخور هم تهشو بطراش به پوست صورت و دستت بزن پنگ ریقه کن و بعد با آب بشن دکتر قیاس الدین جزائری در کتاب اعجاز خوراکی ها و اسرار خوراکی ها می گوید اگر زنان بدانن که میوه طالبی در لفتافت پوست چقدر مفیده اگر حیات منزلشون اندازه یک مزیک باشه شوهراشون رو مجبور میکنم که طالبی بکارن. آبته به سنتتی خوبشی میگما یه مثال بزنم. لازم نیست آتشقال رو بگیریم. من یکیش منی مثال زدم ها میگه بول سگو. دوم سگ ببخشید لغظبد میشه. یک جفت تخمه سگ نامدر طالب کاندایی سواحل کانادا که جفتی ده هزار تا هم آنها بازار سیاه شده بیس هزار شوخی چون خیلی نمیدارم که مثلا هم میخوای اینه بخوره چی چه قلطی عمو حروم خوری و پلش خوری تو انسانی بلا مسلمان نباشی لازم نیست قادم آشغال خور باشه این موش فاضلا برای بقا انسانیت این هم چیزای خوشمزه تو اهل بیت اسمت و طهارت بحث سمسم جلجلان دو نوع سمسم داریم مؤمنان یعنی کنجد بحث سمسم جلجلان کنجد و روغن کنجد خب میتونه در 24 ساعت یه قاشق پلوخوری بخوره برای نرمی و لطافت پوست و زریب مقامت رو در هوای سرد در مقابل سرد خشک بالا میبرد پوستت ترک ترک نمیشه چربی پوست حفظ میشه به نوع متعادل مندگاری پوست حفظ میشه به نوع لطافت در سرمایه سرد شکننده که سرمایه زیر صفر مناطق ما که نیمه خشکه که گایی تا منهای 20, 22 درجه زیر صفر هم یاد. کشور ما ایران گایی در مناطق سیبری یا روسیه است، گایی در شهر مسکو، تا منهای شست درجه میره زیر صفر روغن کنجد هم تو جیره قضایی تیه قاشق پلو خوری باشه هم قبل از استحمام بدن و روغن مالی کن قربون این حضرت زهران پنجتن آل عبا برم که قبل از استحمام حسنین بدن مبارک اینها رو روغندمانی می‌کرد یاد بگیرید مسلمونا و غیر مسلمونا. از این انسان‌های شریفی که عالمان و واعوفانه عمل می‌کنند دل واقعی خود و دیگران از این پنج تن آل ابا یاد بگیرید آقا کسی که سردردهای ناشی از خشکی دارد و بعضی از اقسام سرده های میگرنی دارد یا حالت های شبه فلجی و شبه تشنجی دارد یا بعضی از اقسام سر دارد یا کمک به درمان جزام یا جنون و حتی بحث پیسی و مانند او بحث سعوط سعوط سین این وو تدست دارد سعوط زید سمسم به بینی بکشه روغن کنجد خالص را در درمان و پیشگیریه همه که گفتم نخش دارم علمای صالعشیه همچون آیت الله شیخ عباس تبریزیان بعد از 20 سال تحقیق چهار جلد کتاب نمیشته طبق رسول مصطفی صلی الله علیه و علی و وسلم جلد دو اللهم صل على محمد وعلى محمد اجتهاد جان جلد دو وسطای کتاب مبحث سعود بعد اونجا به فرمایشات مؤذن ده حواشی دارم حالا نمیخوام بگم اونجا یه چیزایی نمیشه یا فرمایشات علامه مجلسی در بهام بعد از بحث الحمیه بحث وجع الرأس بحث سردد و مطرح کرده روغن جلجلان یا سمسم اینا که بمونه بحث یاسمن، بحث زنبق مطرح شده. باز اونجاها هم مؤمنان یه حواشی بیان کردیم. حالا مباحثه می‌خوام گم نکنیم من گفت توضیح میدم، می‌خوام بریم تحقیق کنیم مؤمنان. پس کنجد و روغن کنجد. خب این پرتقال شیرین، این لیمو شیرین آخرین پیشرفت‌های علمی باز میگه ویتامین C نقش ضد سرطانی دارد ویتامین C شادابی و تراوته پوست را حفظ میکند لازم نیست که من مکمل رژیم غذایی شیمیایی بخورم یا قرص جوشان ویتامین C بخورم خب بس ات یه پرتقال شیری میخورم حلاله طیبه مشجا کشورتون ماشاءالله چهار فصل ساله محتاجی به جایی نیسی همیشه سال هست بحث لیمو شیرین بحث ویتامین b بی یک خب تو فصل سرد و خشک و نزولات آسمانی کم مثل فصل پاییز یا زمستون سرد و نیمه خشک و گاهی سرد و مرتوب اگر بارش برف مناسب باشد میخوای خودت و زن بچه تونتون سرما نخوری و سرما خوردگی طول نکشه. تا لطافت پوستت باقی بمونه بله بله بله یک پرتقال شیرین با نهار بخور یک لیمو شیرین با شام بخور آخرین پشتفطای علمی میگوید اگر درصد ویتامین C و درصد ویتامین B1 در بدن چند بشه تون تون آدم سرمه میخوره سرمخوردگیش هم طول می حتی از کتب مرجع دانشگاهی همچون اصول تبه داخلی هاریسون جلد هفت تو بحث ویتامین ها نگاه کنیم باز مرحث ویتامین سه و بحث ویتامین بی یک آقا هم دیابتی هم هم کلی هم کمکاره هم پوست هم به اسطلاح فقهی و روایی کلف الوجه گرفتگی چهره و تاری پوست چهره دارم میخوای از کلف در بیاد ساخت کردنی اوسانس شیمیایی فست فود ها نخور هر روز تو جیره قضایی خیار بوته ای باشه سه عدد اگر دیابتی هستی و خون دیویس به بالا هست روزی سه عدد مغز خیار رسیده با قاشق بتراش بخور پوستش و گوشتشو نخور مغز خیار رو با قاشق بتراش بخور هم تخم خیار هم تلخه خیار انسلین طبیعی داره قندت ته میاره پایین هم پوستت شفافه با رطوبت عادیه چون پوست قندی ها یا کسایی که بیماری های زمینهی یا دیابتی یا اون بزرگوار دیگه بیماری های متابولیکی دارن مثل کمکاری کلیه یا چربی خونه بالا اینها پوستشون خفه تیره است کل بدن حتی صورت تصافه همونی مومن نمکی نیست کرم قهوهی نیست جنتیکم نه این بلعرز شده شما سمغز خیار هر روز بتراشه بخوره حالش خون میشه خوشت تو آینه میبینه کف بگی حتما به دیارتی بگین. نه نمیخواد انواع مختلف کرمای شیمیایی بخوره داخلی و خارجی خیار درختی نه ها. خیار گلخونهی نه خیار بوتهی یکی دیگه از چیزهایی که هم کمخونی تو خوب میکنه هم طول عمر پوست تو خوب میکنه هم رشد مو میاره هم کمخونی فقر آهن و فقر ویتامین به دوازده و اسید که تو خوب میکنه هم سیستم دفاعی بدنتو تقویت میکنه هم لطافت پوست میاره هم یه غذای کامله که از صبح که خوردیان تا ظهر دل مال شک نمیگری دل زعفه نمیگری چی همه روغن کنجد یا ارده چه ارده ای چه ارده جای دیگه؟ چه ارده اردکان؟ اردکان ارده درجه یک داره روغن کنجد درجه یک هم. به نسبت مساوی. مثلا نیم کیلو ارده نیم کیلو هم عسل طبیع صرف اصاب داری قصدخون درده ناشی از صرف مزاجی یا افت متابولیسم بازال داری؟ تو از عسلای گرم بذار. از اصل آویشن، اصل نعنان. اگر تجمعه مایات اضافی بافتی داری یا کیست، یا تومار، چه خوشخیم، چه بدخیم تو اصل استخدوست بذار. که ردیف اول عسلای گرم. پس به نسبت مساوی، روغن کنجد یا ارده با عسل مثلا نیم کیلو، نیم کیلو تا چه قاطی کن خوب هم بزن. این بستنی کش میاد. هر روز صبح قبل از این که بری سر کار منزل یا بیرون ها، مخصوصا تو فصل پاییز و زمستون یه قاشو پلو از این مخلوط بخور اگر تا ظهر زعف کردی من به جایزه میدم من چهار سال تمرین کردم نه یه روز روز چهار سال اون وقتایی که هنوزم هم ها اون وقتایی که طلب همونم من از رزویه قوم صبح مؤمن از هشت تا دوازد طلبی از سه و نیم تا نه شب شبونه این درس جدید و در دو تا درس هم می‌دادم. بین یک تا سه من دو تا درس می‌دادم. حالا منظور کار داشتم عجله داشتم. عجله می‌خواستم خورش دلزعفته نخورم. یک قاشق کش می‌کردیم همین که بهتون گفتم. قبرق می‌خوام بگم تو وایات که داریم ان العسل شفاء من كل سمن. که محدث نوری در کتاب مستدرک میاره خیلی فواهد داره یا بحث اصل درمانی مهندس صالح نجار یا زندگی زنبورا و پرورش زنبور اصل و ایجاد کندوهای طبیعی و اصل طبیعی پروفسور فون فریش ترجمه مهندس شهرستانی پروفسور فون فریش برنده جایزه نوبل 1918 برنده و تا دیگه ای که در این زمینه هست حتی دکتر محمد دریایی تو بحث زنبور عسل متخصص علوم زیستی و گیاهی ها میگم قدیم و جدید نداره قربون چهارده معصومم یک چانه حرف حساب بشنو عمل کن خیرش هم ببین فرمایش امام صادق علیه السلام در مستدرک محدث نوری این العسل شفاء من کل سمن چه آفونت، چه چرک داخلی یک آنتیبیوتیک قویه پینیسیلین تقیی قوی یا آموکسی قوی یا آموکسیسیلین قویه یا سیفالکسین قویه زد باکتری، زد قارچه زد میکروب، زد ویروسه وقتی که رقیق بشه خاصیت میکروب کشیش دو برابر میشود دیسپاچینگ بدن کنترل مرکزی بدن رو تقویت میکنه چرا بهترین های خودتون رو خودتون نمیخورید سرریزش رو صادر کنید نه اینکه اصلش خودتون نخورید یه مش آتاشقال بخورید خوباش صادر کنید حرفان هم چی میگن بهترین خورمان بهترین عسل، بهترین میوه و مانند او مال ایران و عراق است مصرف کنید نوش جان زیادی صادر کنید آخری چیه مومن ها ستا فاکهه مخصوصا رمان تو رمان مخصوصا رمان الحلو رمان الحلو حاجه میخوام لکنت زبان بچم باز بشه سودم به سن شبابی برسه قال صادق و علیه السلام رمان الحول آبیش بیش بده بخور اینقدر خوب شدن مهمونم ای زرگه تخم مرگ و تقم بلدرشین قد اطفاله در بچه بدتر میشه رمان الحل حاجقا میخوام پوستم شفافه برواقه درخشان بشه حاجقا نسبت به ناموسم دل کنم نه دل که ازم فرار کنه فرار رو برقرار رو ترجیح ندید بلکه دلبری کن همین کلمه‌ای که گفتم می‌خوای پوست شفاف و برق درخشان داشته باشی بله بله بله هر روز یک لیوان آب انار شیرین بعضی متخصصین مثل دکتر متخصص تغذیه است مهندس مهندس صنایع غذاییه دکتر مهندس شهران مقصودی در کتاب انار درمانی ایشون چی میگه میگه یک لیوان تا دو لیوان بخوره تصالت فهم بودیم؟ میگه پوستت شفافه بر راقه درخشانش هج آقا بله کبدم ضعیف شده تحالم بدکار شده وقتم آزمایش خون دادم سلولای مرده خونیم زیاد شده چون قبرستون بدنم که تحاله که سپرزه سلولای مرده خونی خوب دفع نمیکنن. میخوام هر داشت خوب کار کنم. و قدیدترین داروی تصفیح خون گلنار وحشی یعنی گل انار وحشی یعنی گل و قنچه درخت اناری که میوه نمیده فقط گل میده. تو منطقه شمال گیلان مزنده فره. پره. مردم هم جور روش میرم. چون قافله چون جاهله. اگر کسی یک صبح ناشتا هفت عدد گلنار وحشی بخورد با آب یا آب جوش بلم یا با آب انار شیرین به مدت یک سال بدنش بیمه میشه نه دومل میزنه نه زیگل میزنه نه های چرکی بفهم. گلنار فارسی یعنی گل اناری که میوه میدهد اینه به اسطلاحه تب گیایی مکمل میگن گل گلنار فارسی اون خاصیتش کمتر از گلنار وحشیه گلنار رو تو همون قنچه بکن نظر گلش باز بشه خاصیتش قوی تره این هم یک کم تخصیصی طب سنتی وستون گفتم حالا منظورم روایاته بحث رومان و ما منن منافع المتنوعن که ویتامین های ضروری بدنت ویتامین آب به سی دی ای تامین شود برای رشد موتم مومن ها میتونی از روغن بادام تلخ استفاده کنی از اون قوی لوز و مرم. یا این که از اون قوی تر روغن سیاهدانه خالص که سیاهدانه رو تو روغن زیتون به جشونی 20 دقیقه قبل حمام از اون قوی تر روغن کندوش، کندوش از هندوستان میاد، ایران نداره کندوشو که خریدی، تمیزش میکنی، پودرش میکنی، تو روغن زیتون خالص که بهترینش روغن زیتون لبنانیه توش میجوشونی بعد صاف میکنی، 20 دقیقه قبل حمام کندوش به قدری قویه که محمد مؤمن حسینی که از اتباع دربار شاه تحماس به صفویه، در کتاب تحفه حکیم مومن میگوید حتی اگر کف دستت بگذاری مو با اینکه که علاق پیازمو پیاز مو تو کف دست و پانی میخواد داره از باب مبالغه قدرت رویش مو رو میگه و طول عمر مورم هم افزایش میده پس کسی که ابرواش تنک شده یا ریخته به خاطر استرس روغن بادام تلق کسی که مجاش کوتاهه هی میریزه با روغن بادام تلخ از اون قوی تر روغن سیاه خالص توضیح دادن کسی که پیاز موی سرش سالمه ولی مواش خلوت شده موهای سرش میتونه با روغن کندوش که خودت درست کنی ها توش پارافین نباشه گلیسیرین نباشه آه. از این که قاطی میکنن نباشه آه. تو روغن زیتون خالص خودت به جوشون مومن ها 20 دقیق قبل حمام استفاده کن اللهم نسانی عالم محمد این محمد